بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه و صحبه اما بعد دوم من درسز درسوی سوری يوسف فمده الله جل شأنه اذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين زمانی که یوسف علیه السلام به پدرش گفت یا ابی، ای پدرم، انی رأیت 11 کوكب، را مندیدا یا 10 ستاره و خورشید و ما بر من سجده می‌کنند. چندین بحث در این آیه هست. بحث اول کانون خانواده و نوع خطاب بین پدر و فرزند. اینجا از یوسف به عنوان فرزند در مقابل پدرش ای پدرم. آیه بعد قال یا ای فرزندم. نوع لطف در گوییش و در کلامی که باید بین ماها مراوده بشه، رد و بدل بشه. مهمه که ما مخاطب خودمون رو چطور صدا بزنیم. اینجا الله جل او ادب را بهمون یاد میده در اینکه چطور الگو بگیریم از پیامبرانش، یعقوب و یوسف و درسهایی که در این پدر و فرزند هست. زمانی که فرزند به پدرش میگوید ای پدرم، افقال یوسف یوسف لابیهِ وقتی که یوسف به پدرش گفت یا ابتي انی رایت من دیدم در خواب دیدم. زه ستاره بر من سجده میکنه و خورشید و ماه در خواب دیدم بحث خوابه خواب و اهمیت خواب اینکه خواب وحی الهی است خصوصا بر پیغمبران الهاماتی حقا یعنی الله جل شأنه اخبار خودش را توسط خواب به آنها الهام میکنه وحی میکنه خواب به پیغمبران حقه چنانچه در قصه ابراهیم و اسماعیل داریم یا بنيي اني ارى في المنام اني بحک ای فرزندم دیدم در خواب ابراهیم میگه به اسماعیل دیدم در خواب که تو را میکنم یعنی دستور الهی بر ذبح تو ای فرزندم چی میبینی چه کار کنم قال یا ابی افعل ما تؤمر ای پدر اون چیزی که الله به دستور داده انجام بده اینجا هم الله خبری مجدئی را به یوسف میرسانه یعقوب هم می ترسه حراس داره از این که این مجده سبب حسادتش بشه سببشه که حسادتش بکنن برادرانش پدر دلسوز و مهربان نسبت به فرزند الان میاد در آیه بعدی پس خوابه این خواب یک ای درش هست که دلالت داره بر این که یوسف به مقام بالا و بالایی خواهد رسید به جایی خواهد رسید که ستارگان بر او سجده بکنن خیلی مقام بالاییه ستارگان سر به زلتش و بگذارن سجده در های پیشین درست بوده از باب تعظیم و ادب و احترام انجام بشه ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت خودش نهی کرده ممنوع کرده درست نیست چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرماند به معاذ درست نیست که کسی به کسی سجده بکنه در دیانت ما درستی است در دیانت پیامبران پیشین درست بوده چنانچه میاد در قصه یوسف انتهای قصه‌اش برادرانش وقتی که میان بهش سجده میکنن سر به تعظیمش میذارن خب یوسف علیه السلام اینجا در خواب میبینه که یازده ستاره سر به سجدهش گذاشتن یعنی او را تعظیم میکنن مقام بالایی برخوردار شده که این یازده ستاره سر به سجدهش میگذارن بحث دیگری که در این خواب هست 11 ستاره فرزندان یعقوب درست اشتباه کردن ولی به اشتباه خودشون پی بردن و توبه کردن کسی نمیتونه ملامتشون بکنه درست اشتباه کردن ولی کسی نمیتونه ملاماتشون بکنه چون توبه کردن مقام بالایی داشتن اینجا اشتباه کردن اشتباهشون الله داره گزد میکنه ما هیچ وقت حق نداریم کسی را تحقیر بکنیم به خاطر گناهی که انجام داده یا انجام میده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین زن زانیهی فاحشهی به خاطر آباد دادن به یک صد بهشتی شد یک زن فاحشه حق نداری اون زنی که فاحشه است یا اون مردی که مرتکب گناه شده تحقیرش بکنی به خاطر گناهش شاید اون بهشتی بشه و تو بهشتی نشی در کرم و بخشش الله باشه در زمان رسایی که از اصحاب گفت که فلانی الله او رو نمیبخشه رسول خدا سلام شدن که کی هست الله میگوید که بر من حکم میکنه او را بخشید اما تو را نبخشیدم من نمیبخشه کسی نمیتونه بر الله حکم و بکنه الله در رحمتش برای بندگانش بازه اینجا بندگان خطاکاری هستن می خطا میکنن و یوسف هم از حق خودش میگذره و الله هم از آنها میگذرد به اشتباه خودشون پی بردن مهم اینه که انسان به اشتباه خودش پی ببر این درسایی هست در این همچین همچنین بحث خوابه انسان خوابش را به کسی بگه که دلسوزشه پدر دلسوزه برادر دلسوز شاید نباشه. حتی اگر برادرتننی یا غیر تنی باشه شاید دلسوز انسان نباشه. انسان باید با پدر خودش رفیق باشه باید. ارتباط با پدر خودش بزرگتر از خودش برقرار بکنه خیلی مهمه که انسان حرفش را بزنه با اون کسی که دل سوزشه خصوصا در تعبیر خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند خوابت رو به هر کسی نگو شاد حسادتت بکنن در اون خوابت خواب ها سه قسمتا یا اینکه خوابی که ما میبینیم الهامی است برای ما یا اینکه خاطره ای که ما در ذهن خودمون پرورندیم حدیث نفس فکری به یک موضوعی داشتیم فکر میکردیم که اون در خواب به ما به تصویر کشانده میشه خواب و خیال حج و عمره داریم یهو میبینیم که جلوی خونه خدایی تعبیری نداره حدیث نفس خواب دیگر خوابی از شیطانه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب یک چهل یک بیست و یک هفتاد دوم یعنی چی یعنی احتمال صحت خواب اگر بخوام یک هفتاد دوم در نظر بگیریم شاید دو درصد باشه شاید یک چلشی شم شاید یک بیسی بنسبت افراد فرق میکنه اگر یک بیسی شم بگیریم شاید چار درصد تا پنج درصد احتمال صحت حد داشته باشه خواب را نباید انسان گنده بکنه اینها درسایی هست خواب پیغمبری از پیغمبران با خواب دیگران تفاوت داره خواب ما شاید حدیث نفس و خواب یا شاید از طرف شیطان باشه ولی خواب پیغمبران حقه بدون شک میتونم خواب ما حق باشه. خواب رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمای میگه بر بال پرنده‌ایه اونطوری که تعبیر بکنی میفته خواب را نباید بعد تعبیر بکنی تعبیر خواب اجتهاده علم شریعت میخواد نمیتونی بدون علمی از شریعت خواب را تعبیر بکنی حق نداره کسی که علم شرعی نداره تعبیر خواب بکنه چون خواب ها برای خودشون رمز و موزی داره که با توجه به اون رمزها خواب تعبیر میشن شخصی خواب می‌بینه در زمان ابن سیره میاد میگه که من خواب دیدم با مادرم زنا میکنم شخص صالحی بود بعد بهش مجده میده میگه تو حج میری چطور با مادرش زنا کرده بعدم حج بیره میگه بله حرمه مادر حرامه بر شخص و مکه هم حرامه تو پا در سرزمین حرم میگذاری و حج میروی و حجم رفت اون شخص نگاه کنید دقت در فهم دقت در رمز و نمودی که در اون خواب هست هر کسی نمیتونه یک علمی هست از سوی الله که به هر کسی نمیده اینجا از بین یوسف و برادرانش یوسف انتخاب میشه برای تعبیر خواب یک قدرتی و توانی را الله در یوسف گذاشته برای تعبیر خواب در زندانه میاد خواب میبینن میام پیش یوسف تعبیر کن برای ما یا فرعون خواب میبینه یوسف تعبیر من. هر کسی تعبیر نمیکرد هر کسی نمیتونه معبر خواب باشه یک فقه، یک علم، اگر ما علکی برای کسی تعبیر خواب بکنیم، اجتهاد بکنیم، گناهکار میشیم. اجازه نداریم همطور که حکمی از شرع را به کسی بگیم بدون علم بگیم که این تیموم اینطوریه یا وضو اینطوریه که ما علم نداریم اگر اشتباه کنیم گناهکار میشیم در تعبیر خوابم هم همینطور اینطوری علمی از علوم شرع که شخص اجازه نداره همینطوری از جیب خودش اشتهاد بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودش به اصحابش یاد میدادن میشن بعد از زمان میونه کی خواب دیره بعد با اصحابش میگفت که کسی هست که میتونه تعبير بکنه یاد میداد به اصحابش تعبیر خواب علمی از علوم شریعت که ما وظیفه داریم که یاد میگیریم یعنی اون اشخاصی از امت باید بدونن تا اینکه جلوه اهل جهل و نادانان را بگیرند انی رایت 11 کوکب و الشمس و القمر تشبیه برادران یوسف به ستارگان آسمانی نشانه مکانت و اونها هست. جایگاه اونها هست اون آدمای کمی نبودن و الشمس و القمر خورشید مادر یوسف و ما هم پدر یوسف چرا مادر تشبیه به خورشید شد و پدر تشبیه به ماه گفته میشه در بحث خورشید چون خورشید تابانه هم از دورش استفاده میکنی هم از حرارتش مادر اون آغوش گرمشه اون لطفشه اون مهربانیه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شخص میاد میگه که من را به نیکی کردم به چه کسی توصیه میکنیم میگه مادرت میگه سپس میگه مادرت میگه سپس میگه مادرت میگه سپس پدرت سه بار گفت مادر مادره اولین کسی که ما امر بخوبی خوبی شد مادر است پس مادر است پس مادر است نه انسان کوتاهی بکن در حق ولی مادر به خاطر لطف و مهربانی و گذشتی که میکنه نسبت به فرزندش توصیه شده که اهمیتی بیشتری بهش داده بشه نه اینکه انسان بی اهمیت باشه نسبت به پدرش رایتهم لیساجری دیدم که اینها به من سجده کردن قال یا بنيه اینجا بحث یعقوب با فرزندش یوسف یا بنيه ای فرزندم لا تخصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ای فرزندم این خوابت را به برادرانت نگو غيبتي است پشت سر برادرانش داره بهش گوشزد میکنه که اونها مواظب باش که بهات دشمنی ميورزن اگر از این خوابت بدونن از این مقام والایی که بهش مژده داده شدی بدونن شاد باید جنگن، شاد بهت حسادت ببرزن مواظب خودت باش پس چرا الله گفتی غیبت نکنید؟ بله غیبت نکنید مگر در اون جاهایی که شریعت به همون اجازه داده چناچه مام نبیره در ریاض صالحی میگه میگه چند جا به همون غیبت اجازه داده شده یکی در مقابل حفظ دین یک یعنی جایی میبینیم که شخصی مثلا بدگویی ام المومنین عایشه میکنه ما وظیفه داریم سنگ ام المومنینا رو به سینه بزنیم کسی که الله در قرآن او رو تبرئه میکنه و بعد یک کسی بیاد دشنام بهش بدیم اینجا از باب دین و دینات میگیم بابا ای فرزندم ای دوستم ای رفیقم ای شاگردم مازه باش فلانی بدگویی ام المومنین میکنه باش نشین این دینه برای حفظ دین ما اجازه دادیم از اجازه داریم از طرف که غیبت اون شخص بکنیم و گوشزد بکنیم که نزدیک اون شخص کسی نره و جایی از باب حفظ ناموس حفظ مال شخصی میاد خواستگاری یک دختری اگر از ما پرسیدن نظرت در برای اون شخصی که اومده خواستگاری این دختر چیه وظیفه داریم که بگیم نماز, نماز نمیخونه مشروب میخوره اینجا این غیبت کردن واجبه در حق ما چنانچه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلام رخ داد زنی میاد میگه که فلانی اومده خواستگاری و فلانی میگه فلانی همیشه در سفر اسا دست یا میگن که دست به داره و فلانی مالی هم نداره خب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون دو شخص را اینچینی میاد میکنن ازباب چی؟ باب نصیحت اینجا اینجا غیبت جایز شده به خاطر حفظ زندگی و کانون خانوادهی که تشکیل خواهد داد اون زن ازباب نصیحت رسلا سلام میگه که نه این به دردت نمیخوره و اونم به دردت نمیخوره اینجا ازباب نصیحت یعقوبم اینجا ازباب نصیحت چون از حال برادران یوسف میدونست میگفت ای گفت به یوسف ای یوسف به برادرانت از این خوابت بازگو نکن مسئله دیگه که علماد در اینجا در تفسیر این آیه اشاره بهش میکنن میگن که خب یوسف و بنیامین از مادری و اون ده تا برادر دیگر از مادری دیگر بودن مادران نقش مؤثری در تربیت فرزندان دارن نگاه بکنید پدرتون چقدر همیت میده به اون برادر ناتنیتون نگاه بکنید هممغمش فقط اون برادرتونه نگاه بکنید فلانه هبوها باید بدونن نباید فرزندان خودشان رو تحریک بکنن بر علیه برادران و خواهران دیگر شوهرشون اینها ها درس تربیتیه که اگر این کارو کردن آخر دودش تو چشمان کی میره خودشون خب ما میبینیم حسادت از باب حسادت میان برادران یوسف که برادر رو بکشن بعد یکی از برادران سوزی میکنه میگه نه نکشید بندازیش تو چاه یا بفروشیدش کی چه, چه کسی راضی میشه با فرزندش این کاری بکنه با برادرش این کاری بکنه هیچ کس ولی که اینجا این برادران راضی شدن این کارو با برادرشون بکنن از کجا این نشعت گرفته؟ از تربیت ما این که تربیت میکنیم اونطوری که میخواهیم بچه های ما همچون خمیری هم به دست ما چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ما من مولودن الا یورد علی الفطره. هر بچه این اوزادی به دنیا میاد بر فطرت به دنیا میاد پاکه دلش صافه فا اوواه و یو هودانه و یو نصرانه و یو مجسن که یهودی میکنن مجوسی میکنن نصرانش میکنن. دیانت و اعتقادشون عوض میکنن پس ما این که فرزندانمون را تربیت میکنی قال یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا انت ان اگر با اونها بگی سبب میشه که اونها مکری بکنن و اونم نهر هر مکر و نیرنگی مکر و نیرنگ سختی شد برای تو تدبیر کنن این گوجزده از این اینکه یوسف علیه السلام هم از یه طرفی برحذر باشه که شاید برادرانش توتعی بکنم برای علیهش حواست جمع باشه از یک طرف دیگر یعقوب علیه السلام این قضیه را رقم میده به نه ذات فرزندانش که بگه اونا خرابن اونا بدن نه این الشیطان لیل انسانی عدو بدون اون برادران اگر مکرونه رنگی بکنن علتش کجاست؟ ابلیس، ابلیس شاید بیاد اونها را وسوسه بکنه بیاد در دل اونها بر علیهت کینه و بغضی بسازه که سبب بشه که بر تو مقر بکنن و با تو دشمنی ببرزند بدان ای فرزندم که دشمن واقعی انسان ابلیسه که دشمنیش با انسان واضحه بخاطر همین صفت وقتی که برادرانش میان ازغایی میکنن چی میگه؟ میگه شیطان اومد میان من و شما اختلاف انداخت من بعد شیطان شیطانو بین و بین اخوت این شیطان بود که وسط ما اومد نه میاد اونارو سرزنش بکنه ملامت بکنه سرکوب بزنه نه شیطان بود رسول الله الله عليه و سلم میگه ان يجري من ابن ادم مجرى الدم شیطان از خونی انسان وارد انسان میشه و وارد قلب انسان میشه و انسان رو گمراه میکنه و انسان رو وسوسه به کار بد میکنه بدانه یوسف تن شاید اشتباه بکنن و شیطان بیاد تو ای بچینان با قلب ها را بر علیهت وسوسه بکنه و اونها شاید خطایی انجام بدن ایوسف هوشیار باش هوشیار باش زیرک باش چشم دلتو باز کن توصی یک پدره دل سوز یک فرزند ای فرزند مازه به خودش با. خودت باش از باب نصیحت فرق بین نصف و نصیحت کردن و فضیحت کردن رسوا کردن و سرکوب کردن یا سرکفت زدن یا اکراه کردن چه در رفتار یعقوب اینجا با یوسف چه در رفتار ابراهیم که یاد شد ابتدای بحث با اسماعی ya ya ya از باب مشورت وارد میشه ای فرزندم دیدم در خواب اینچینی چیزی نمیاد مجبورش که یا خدا گفته که سرت بزنم باید سرتو بزنم نه از باب مشورت وارد میشه مشاور فرزنده خودمون باشیم از در اجبار و اکراه وارد نشیم از در سرکوب و سرکوف وارد نشیم انس رضی الله عنه میگه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم رو سرکوفت نمیزنه که چرا این کارو کردید چرا اون کارو نکردید خوردشو نکنیم اون کاری که دوست دارن اجبار اکراهشون نکنیم الا اینکه طاعت الهی درش باشه امر الهی درش باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود رس بیانکم بالصلاه في السبع واضربوهم في العشر ببطوات بگید اسحف سالگی نماز بکنن اگر در ده سالگی نخوندن کتک بزنید یعنی قبل از ده سالگی اجازه ای کتک ندارید برای مهمترین چیز در زندگی ما اونم نماز که ستون دینمون هست ما قبل از ده سالگی اجازه کتک زدن به فرزند من نداریم حقی دیده براتر از حق الله نداریم اجازه کتک زدن نداریم قبل از ده سالگی نباید بچه کتک زده بشه در ده سالگی برای امر عظیمی همچون نماز یا پای مال شدن حقی از حقوق ما اجازه داریم که بچه رو تنبیه بکنیم ولی نه اون تنبیه باشوت و لگت لگت مالش بکنیم و بزنیم بکنیم, بکنیم در و دیوارش نه شهر مشخص کرده نوع کتک زدن با یک خیزران کوچیکی در یک خونه گذاشته بشه از باب اینکه بچه حساب ببره هدف از تنبیه خرد کردن گوشت و سخون که نیست اینو باید ما بدونیم در نوع تعامل خودمون با فرزندمون و همچنین باسران رفیق باشید با همسرانتون مواظب رفتار تو با تو باشید بله انسان قاطعیت داشته باشه ولی بله در حین قاطعیت باید حلم و بردباری و صبوریت و رفق و رفقات داشته باشه لطف داشته باشه این دو بال زندگی چه در تعامل با فرزند و چه همسر وقتی که از این از این دو بال وقتی که زندگی توازنش رو از دست بده اون توازنه از بین میره انسان مایل میشه انسان در ظلم میفته این دو تابال باله که انسان رو متوازن قرار میده انسان رو حفظ میکنه اگر میخوای دین تو حفظ کنی، مواظب و رفتارت باش تعاملت باش و اینجا درسی هست که الله بهمون در این سوره میده سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك صلی الله محمد و آله محمد